درس یازدهم خواندن شاهنامه فردوسی درباره فردوسی شاعر و هماسرای بزرگ و شاهکار جذابدانی او شاهنامه که بیش از هزار سال از نگارش آن می گذرد، سخن بسیار گفته شده و کتابها و مقالات فراوانی به زبانهای گوناگون نوشته شده است. بجز ایرانیان که با فردوسی و اثر گرانمایهش پیونت های زبانی، فرهنگی و ملی دارند، دیگران نیز در مورد این سرچشمه اندیشه و خرد و فرهنگ ایرانی و انسانی تحقیق کردند که برای ما ایرانیان هم افتخار آمیز و غرورانگیز است و هم جای قدردانی و سپاس دارد. از این رو نه تنها پژوهندگان فرهیخته، بلکه خوانندگان پیگیر و دوستداران اثرهای درخشان ادبی جهان در هنگام مطالعه و بررسی شاهنامه با نمونتهایی از احساسات گوناگون انسانی همچون آفرینها و نفرینها، مهرها و قهرها، سرورها و ها، پیروزی پیروزیها و شکست ها برخورد می‌کنند. از میان متون کلاسیک نثر فارسی، قابوس نامه قابوسنامه نامه توسط امیر اون سر المعالی که کابوس اسکندر ابن قابوس ابن از عمرای آل زیار برای فرزندش گیلان شاه نوشته شده است. این کتاب یکی از روانترین متون نصر فارسی است که نکته های اخلاقی و اجتماعی و حکایات شنیدنی را دربر میگیرد. گیرد. تن خیش را بعض کن به فرهنگ و هنر آموختن و این تو را به دو چیز حاصل شود. یا به کار بستن چیزی که دانی یا به آموختن آن چیز که ندانی حکمت و سقرات گوید هیچ گنجی بهتر از هنر نیست و هیچ دشمن بتر از خوی بد نیست و هیچ عزی بزرگ از دشمن نیست و هیچ پیرایه بهتر از شرم نیست پس آموختن را وقتی پیدا مکن چه در هر وقت و در هر حال که باشی چنان باش که یک ساعت از تو در نگذرد تا دانشی نیاموزی و اگر در آن وقت دانایی حاضر نباشد از نادانی بیاموز که دانش از نادان نیز بباید آموخت از آنکه هر هنگام که به چشم دل در نادان نگری و به سارت عقل بر وی گماری آن را از وی پسند آید دانی که نباید کرد چنانکه اسکندر گفت حکمت من منفعت نه همه از دوستان یابم بلکه از دشمنان نیز یابم از آنکه اگر در من فعلی زشت بود دوستان بر موجب شفقت بپوشانند تا من ندانم و دشمن بر موجب دشمنی بگوید تا مرا معلوم شود این فعل بد را از خیشتن دور کنم پسان منفعت از دشمن یافته باشم نه از دوست تو نیزان دانش از نادان آموخته باشی نه از دانایان ایران را بهتر بشناسیم کنیسا ورودی یک کنیسا فاقه در یکی از محله های قدیمی اصفهان کنیسا ساختمانی است که یهودیان در آن دعا میخوانند و مراسم دینی خود را برگزار می کنند. نام این کنیسا بالای در ورودی به زبانهای فارسی و عبری نوشته شده است کتابهای مقدس یهودیان به زبان عبری است و بسیاری از یهودیان ایران و سایر کشورهای جهان این زبان را فرا میگیرند